آیا شریفین فرمان یورد الله ای یهودیا هو صدره او لال اسلام هرکه که خدا به خوده دعایتش کند شهر بهش میده ان يس... و من یورد ای یهودیا هو یج از صدره او ذیقان حرجن که نما یس سعدو ف که دلیکه یج علی الله هوریسه وگیشون نیب بودن منظور از شهر سعد چیه که دست میاد؟ نیشونای حمته انسان اول وقت واقعا بولا میشه نماس رو میخونه وقتی گناه میخواد پیش بیاد رو پیش نمیاره تعمدن و همت به پیروی از خدای متعال داشتن نشانه شرحصد ره شرحصد تعبیر از تسلیم در واقع شرحصد یعنی حصولی کردن بر عبادت بندگی اونی که شرحصد نداره سخت میبینه عملی به قوبی ها را خیلی سخت می‌بینه. نگاه دا داره یه آسمان حرکت میکنه.